و می رسیم به سوره مبارک زاریات سوره مبارک زاریات از نظر ترتیب شست و هفتمین سوره هست که بر آن حضرت صلی علیه و وسلم نازل شد از سوره های مکی هست موضوع این سوره هم قیامت است. موضوع این سوره هم قیامت است. این آیت داشته باشید ربط این سوره با سوره قافچیه در سوره قاف شما خاندید که حشر و نشر میشه خروج از قبور میشه کذالک الخروج شما از قبرها میاید بیرون اینجا خدای عزوجل علی سبیل ترقی میفرماید نه تنها خروج نه تنها حشر نه تنها در اون روز نشر بلکه انما توعدون لصادق واند الدين لواقع. یعنی ای انسان ای که توسط خدا به تو داده شده وعده وادر راسته و جزاء واقع میشه. چی واقع میشه؟ جزاء واقع میشه. یعنی انسان های بد به کیفر اعمال بد میرسن. انسان های خوب و نیک جزای نیک دریافت میکنند. بس اینجا علا سبیل الترقی می فرماید تنها برخواستن و بلند شدن از قبر نیست بلکه جزا هست الله تعالی هر کسی را جزا میده مطابق احوالش در این سوره هم دو تا دلیل عقلی برای اثبات مدعا خداوند ذکر می فرمید. یک تخویف دنیاوی ذکر می و پنج نمونه از عذاب یعنی پنج نمونه از اقوام گذشته انهایی که نپذیرفتند انهایی که انکار کردند خداوند در این سوره مبارکه این پنج نمونه را ذکر می فرماید. اما ابتدا برای اثبات مدعا خدا تعالی دلیل می گیرد و شاهد می گیرد انواع بادها را ببینید بادها شما مشاهده کردی تجربه زندگیتون هست که در دنیا بادهای متفاوتی هست بعضی بادهای تند و تیز هستند همه جا گرد و خاکه همه جا غبار هست اصلا چشم چشم را نمیبیند. بیند آسمان ناپدید میشه. انسان ها نمی تونن جلوشون را ببینن ماشین ها متوقف می شند و قدم قدم را می روند تصادف میشه اگر تند برند بعضی بادها ملایم هستن. نسیم بسیار ملائم آرام آرام می وزد که انسان لذت میبرد لذا انواع بادها هستند و الذاريات ذروان قسم به اون بادهای افشان کننده یعنی هر چیزی را به هوا چی میکنند پراکنده میکنند ذروان افشان کردنی پراکنده کردنی فالحاملات وقرا نوع دوم باد پس قسم به اون بادهایی که حمل کننده هستند بار سنگین را بارسنگین چیه؟ ابرهای پر از باران را بعضی بادها هستن که اینجا احساس نمیشه اما در آسمان در فضا آهسته آهسته عبر را سوک میده و ابرامی برای یک جایی ابرها را کناره هم جمع می میکند اینها را که کنار هم بادها جمع می میکنند گروهی دیگر از بادها نوع دیگر از بادها این ابرها را تقسیم می میکنند یک بادی این طرف میبره یک طرف یک بادی این طرف یعنی بخشی از ابرها را برای این شهر میبرند بعضی را برای اون شهر میبرند فل فل مقسمات امر بسوگنت به اون تقسیم کنندگان امر الهی را یعنی اون بعدهایی که تقسیم میکنن بر حسب دستور خدا ابرها را تقسیم میکنن همه این بادها شاهدند همه این بادها هستند که انما توعدون لصادق و الدين لواقعه اما آنت که شما وعده دادی می شوید از طرف خدای عزوجل این جواب قسم است اون صادق است اون راست اون حق است و همانا جزا واقع میشه جزا در روز قیامت واقع میشه هر کسی به جزای عمل خودش میرسد اما الله بعضم سوگن می خورد به آسمان که شما درباره قیامت عقاید مختلفی دارید دا و السماء ذات الحبق قسم به آسمانی که دارای حبک است حبک بعضی میگویند که به معنای راه حبک به چی میگویند؟ راه ها میگویند چطور آسمان دارای راه است؟ دو تا تفسیر، اول مراد از آسمان جو هست، فضا است. تو این فضاها راهایی هستند که این راها مسیر ستارها و سیاره هستند از این راها در واقع مدار سیارات هستند از این راها این سیارات در حال چی هستند در حال گردش هستند خداوند ازز و, و هم اشاره کرده به فضا و هم اشاره کرده به ستاره ها و سیاره هایی که در حال گردش هستند و هم اشاره کرده که هر یکی یک چی دارد یک مداری دارد یک راهی دارد که تو اون راه میچرخات و بعضی گفتن مراد از آسمان فضا نیست بالا نیست خود آسمان است خود آسمان هم دارای راهایی هست راهها و ورودی هایی که فرشتگان از اونجا تردد میکنن رفت و آمد میکنن لذا الله میفرماید والسما ذات الحبک بعضی گفتن حبک به معنی زینت زیبایی آسمان خیلی زیبا است با این ستاره ها انکم لفی قول مختلف همانا شما انسان ها در اقوال مختلفی هستید حسد. هستید یکی درباره قیامت اقرار میکنه یکی شک داره یکی انکار میکنه همین طور فمنهم ای مختلف فی وقوعه اختلاف در چی داره در وقوی قیامت فمنهم شک بازی شک کننده هستند و منهم جاحید بعضی ها انکار کننده هستند لذا شما مختلف قول شما یفک من افک الله می فرماید از اون قیامت منحرف میشه و رویگردان میشه کسی, کسی که من افک او کسی که به انحراف کشیده شده یعنی انحراف و رویگردانی در ازل او هست یوفک عن اقرار بالقیامه من هو المافوک تفسیر مدارک می فرماید از اقرار کردن به قیامت چه کسی منصرفه چه کسی منحرفه کسی که در ازل او این, این انکار نوشته شده اما انسان ها قیامت را که انکار میکنند بر اساس چی انکار میکنند؟ دلیلی دارند نه اثبات قیامت بر اساس این همه دلایل است که در قرآن ہے. اما کسی که انکار میکنه بر اساس زن و گمان بر اساس تخمین لذا الله میفرمه قتل الخراسون این جمله دعایه است یعنی کشته بشه بمیرد یا به تعبیر ما مرگ بر خراس خراسون کیا هستند خراسون خرس میگوین یک چیزی را که میتو تخمیم بزن از روی زن نگمان مراد کذابون است اونا که تکذیب میکنن چرا تکذیب میکنن؟ بر اساس زن نگمان تکذیب میکنن قیامت را الله میفرمه مرگ بر اینها اینا کیا هستن؟ هستن کی هستند؟ الَّذِينَ هُمْ غمره غَمْرَةٍ سَاهُون خراسون انهایی هستند که در غمرت یعنی در جهالت غافلند جاهل هیچ نمیدانه بعد مسخره میکنه میپرسه یسالون یا یوم الدین سوال میکنه که کی هست روز دین روز جزا کی, کی میشه قیامت تا منم خودم را آماده بکنم به مسخره یومهم علان نار یفتنون الله میفرمايت اون روز قیامت اون روزی است که آنها بر روی آتش گداخته میشوند بر اون روز اون آتش عذاب داده میشوند و به آنان گفته میشه ذوق دوقو فتنتکم بچشید عذاب را اینجا فتنه بمانه عذاب است بچشید عذاب را هذا الَّذی کنتم بهی تستعجیلون این آن چیزی هست که شما نسبت به این عجله می کردید شما می گفتیم متا هز الوعد این وعده عذاب که زودتر اونجا تو دنیا عجله داشتی بچش الان عذاب را تحمل کن ازالذی کنتم بهی تستعجلون پس این جزای کسانی که قیامت را انکار میکنند قیامت را قبول ندارند اما اهل تقوا اهل ایمان سبحان الله اونها در جایگاه خوبی هستند اینجا بعض هم بهشت را خداوند اختصاص داده به متقین متقیان اما اینجا بیان شده که متقیان کیا هستن صفاتشون انایت داشته باشید در این صفات دو چیز هست دو تا اصل که همیشه علماء بیان می این دو اصل را ما داشتے باشیم انشاءاللہ در زندگی خودمون نجات می این دو اصل بتعبیر علماء ما یکی التعظیم لعمر الله دوم دو الشفقت على الخلق کسانی که امر خدا را فرمان های خدا را دستورات خدا را احترام می زارند. احترام می یعنی چه یعنی به اونها عمل می کنند هر چی که مربوط به حقوق الله باشد این هست تعظیم و لامر الله دومی چیز که من شما باید در زندگی خودمون داشته باشیم الشفقت و علی الخلق نسبت به خلق خدا هم شفقت داشتن هر طور خدا اینجا آورده که صفات متقین هست یعنی نسبت به مخلوقات همه انسان احساس داشته باشه بعضی ها هستن که خودشون را در امر دین خیلی پایبند می کنند پایبند می دانند مثلا نمازش فوت نیست روزش فوت نیست روزه نفلی میگیره، حج می عمره می خیلی خدا را عبادت اما در باب خلق شفقت ندار ایچ طرح امی نداره کارگری بیچاره براش کار کرده یک سال گذشته هنوز مزدش را نمیده، این مسلمانی کامل نیست این مکاره هست شفقت بر خلق نداره حق خلق را ادا نمیکنه یا تمام نیکی ها را میکنه پدر از دستش در رنج و ازیتی هست یا اینکه نسبت به خیشاوندان خیلی نامهربانه خیلی کوتاهی میکنه همسایگان از دستش ازیت و آزارند یا مشتری بر مشتری ها کلا میذاره همه حقوق العباد را شما تصور بکنید بیشتر پس این کامل نشد این متقی متقی کامل نیست که فقط به یک بعد حقوق الله یا تعظیم امر الله توجه دارد بعضی هستند که شفقه علی الخلق دارند اما تعظیم امر الله ندارند به مردم رسیدگی میکنه اخلاقشون خوبه رفتارشون خوبه نماز نمیخونند اما بعضی ها هستن مؤسسات شب و روز تلاش میکنن به بینواها می بی میرسن اما خودشون در بعد عبادت سستی در اینم ناقصه لذا هر دوره اگر داشتیم به صورت کمال اون وقت میشه چی تقوی بصورت کامل لذا الله می فرماید ان المتقین فی جنات و عیون همان متقیان در باغات و چشمشهرها هستند متقیان وقتی که وارد بهشت میشوند اخذین ما آتاهم ربهم دریافت میکنند میگیرند آنچه که بیان ها امید احد ربشان یعنی هر ثوابی می دهد هر پاداش می اون را دریافت میکنند انهم كانوا قبل ذلك محسنين این سببس چرا خداوند ان اینقدر این را اکرام میکند اعزاز میکند این را خدای تعالی اینقدر عطا میدهند انهم كانوا قبل ذلك محسنين همانا اینها در دنیا قبل زیم بودن بودند محسنین محسنین دو دارد اگر محسنین نسبت به بندگان باشد نیکوکار بعد شفقت علی الخلق را نگاه بکنیم اگر محسنین نسبت به الله باشد یعنی مخلصین خدا را طور عبادت میکنه که فقط خدا لذا الله میفرماید اینها در دنیا محسنین بودند با اخلاص بودند نیکوکار بودند چطور ببینید دو تا یکی برای حقوق الله یکی برای حقوق العباد قانون قليلا من الليل ما يهجعون اینقدر به خدا دل داده بود اینقدر به خدا محبت داشت که شب نمی خوابید قليلا من الليل ما يهجعون عندك از شب می خوابید ما ما اضافه هست ما يهجعون یعنی کم می خوابیدن در شب می کرد؟ در شب با انترنت و واتساپ و تلگرام نه و بالاسحار هم يستغفرون در وقت سحر انها استغفار خواندند این همون التعظیم و الله است یعنی قدر فرامین خدا را بجا آورد و اطاعت میکرد که حتی خوابش را قربان میکرد و به وقت سحر از خدا تعالی بخشش میخواست استغفار میخواست معلوم میشه که بهترین وقت استغفار وقت سحر است. خدا تعالی هر جا سحر را یاد میکنه، اونجا استغفار را هم یاد میکنه. اینجا میفرماد و بالاسحار هم یستغفروند. الله تعالا اونجا که مؤمنین و آل الباب را زکم میفرماید آخرین صفاتش والمستغفرین بالاسحار. و المستغفرينه و المقيمین الصلاات و المؤتون الزکات تا میاد و المستغفرينه بالاسحار، بوقت سهر استغفار میخواند و این وقت وقتی با بركتی هست بر اساس حدیث شریف وقتی هست که رحمت ها رحمت خدا نزدیک قرار میگردد با آسمان اول میاد و خود خداوند وسیله فرشته صدا می زند آیا هل من مستغفر؟ آیا کسی که الان بلند بیش از من مغفلت بخاط؟ پس این متقین دیگه چگار می و بالاسحار هم یستغفرون در وقت سهر استغفار می خندند. این التعظیم لأمر الله شد. دوهم الشفقه على الخلق وفي اموالهم حق للسائل والمحروم ودر اموال انها حق بود براء السائل والمحروم حق براء السائل والمحروم يعني اصلا مالك خدا بشميدات ميگفت اين حق من تنها نيست حق زن و دم تنها نيست این حق من و بندگان خدا که خدا به اونها نداده و به من دستور داده به فکرشون باشم. اون بندگان خدا که ندارند دو هستن. یکی سائل یکی محروم. یکی سائل یکی محروم. سائل اونه که جلوی درت میاد جلوی مغازیت میاد میزنه درت را وقتی که با ماشین هستی کنار ماشینت میاد به من بده. این سایل است. اون کیم زنگ میزنه میگه من نیاز دارم میاد جلوی خانهت. این هرگز نامیدش نا نکنم ولی اینکه با اندک باشد. بی با اندازه تواند. و دوم تنها به فکر اینها نباش که یک گروهی دیگه از اونها عزت نفس دارند. اونها تو خونه هایشون گرسنی نشستند. اونها اینها اونها را قرآن تعبیر میکنه. والمحروم. اونها محرومند. اونها نمیان پیشه تو تو برو پیش اونها تو برو اونها را پیدا کن جستجو کن انسان اگر من جد جد اگر واقعا دنبال افرادی باشد که اون افراد محروم هستند میابد اینها هستند بندگان مخلص خدا که همیشه دنبال چینین افرادی هستند بعضی میرند از ائمه مساجد سال میکنند تو این محل کیه داشته نباشه مشکل دارے بچه یتیم دارے زن بیواز بی سرپرستے مریزه، علیلے افتاده، جستجو میکنند. کنند بعضی میران از شورا محل زریش سفید محل می پرسند اینجا کیه بعضی میران از مغازدار محل سوپرمارکت مارکت محل پرسند کیه که کی همیشه قرض میکنه نداره لذا کسی بخواد این محرومین را پیدا بکنت می کنت لذا من این توصیه را میکنم به همه مومنان همه کسانی این آیات را و توضیح این آیات را میشنوند که انها در زندگی خودشون برنامه ریزی بکنند کسانی که خصوص الله به انها مال داده و کسانی که مال کمتر دارن به احمول اندازه کمتر خرج بکنند هم سائل را ناومید نکنند نا و هم دنبال محروم برند یعنی برند بررسیب بکنند افرادی را که انها ندارند ولی نمی از ما نمی خاند. اونها را شناسایی بکنند تحت پوشش قرار بدن. هر ماه یک چیزی بهشون بدن. هر ماه اگر بیشتر نمیتونه یک کیلو گوشت ببرن خونهشون برسانند یک مرغ ببرن برسونند اونه که کم داره اونه که بیشتر داره هر ماه شهریه برشون تعیین کنند این حق را خدای عزواجل برای کسانی که خدا به اونها داده گذاشته این کار کار بهشتی هست با این کار خودت میتونی که بهشت خدا را خریداری بکنی و از آن خودت بکنی و اینجا یک کلمه هست که به این کلمه دقت بفرمایید و فی اموالهم حق این دیدگاه خیلی ارزشمنده ای که دارید کار میکنید تو بازار درآمد دارید شما این عقیده و این دیدگاه را داشته باشید که این حق حق من تنها نیست حق منه و حق اونهایی که نمیتونن مثل من کار بکنم حق اونهاست باید سهم خودم را جدا بکنم سهم اونها را جدا بکنم خیلی هستن از مومنین مخلصین هر روزی که کار میکنند کنند می دارند این درآمد را کلشون را تو اون ارز کنم گاف صندوق خودشون نمیذارند مثلا نه تومنش را برای خودش می زاره یک تومنش را تو اون صندوق دیگه برای فقرا میذاره ده قسمت بعضی هستن ده قسمت میکنه یک دهم از درآمد بعضی ها یک بیستم از درآمد این را اختصاص میده از همین جا که درآمد می اون را جدا میکنه وقتی که با اون سائل محروم مواجه بشه با اون محروم مواجه بشه اون را پیدا بکنه به اون می رسانه اگر این حس در وجود ما این احساس در وجود ما بدونید که احساس بهشت رفتن و شوق بهشت رفتن در وجود ما هست لذا الله می فرماید در مال ها اینا حق است یعنی اینا حق اینکه من نت بذاره من دارم بیت میدم هر ما بیت میدم بعضیا مننت میذرم با یک مننت گذاشتن همه را به باد میده این اعتقاد در همون طور که زن بر من حقی داره بهش خرج بکنم پدر مادر بر من حق دارن اولاد صغار و کوچک بر حق دارن اونم بر من حق داره لزمه منتی نیست که برای اونها فردا منتی بگذارد لذا الله می فرماید و فی اموالهم حق للسائل والمحروم در اموالشان حق برای سائل و محروم و فی الارض آیات للموقنین دلیل دیگر برای ثبوت قیامت فرماید در زمین آیات و نشاناتی هست برای کسانی که یقین می کنند زمین نگاه کن تو زمین آیات کم نیست نشاناتی که دال بر قدرت الله باشد که از همون قدرت استنباط می کنین بعث بعد الموت را کم نیست و علاوه الزمین و فی انفسکم در وجود شما قبلا ما این دلایل را به تفصیل خاندیم یک آیه‌ای که برای قیامت در زمین است اینه که زمین مرده را خدا زنده می کند پس انسان مرده را هم خدا زنده می کند در وجود خود ما اینه که هر یکی از ما یک روزی نبودیم یا بودیم به شکل بیجان بودیم مثلا به شکل نطفه این نطفه بیجان را خدا زنده کرد پس این مرده بیجان را هم خدا زندمی کنه برای ثبوت قیامت هم وفی الارد آیات للموقنین و هم وفی انفسکم در وجود شما هست افلات و آیا شما نمی بینید شما چشماتون را باز نمی کنید دعوت به بصیرت هست آیات شما درک نمی این مسائل را الله دوست داره بندگانش بصیرت داشته باشند تدبر داشته باشند بیندیشند و فی السماء و ما توعدون و همین از آثار قدرت پروردگار در آسمان رزق شما هست خدا خداوند از اونجا رزق شما را حواله دست دستپاچه نشید خیلی ها پاچه هستن میگه جمعیت زمین داره زیاد میشه آب کم است غذا کم است در آینده با مشکل مواجه میشیم خیلی ها امروز همین شوهر رو می میگه در آینده از نظر مسکن مشکلات پیدا میشه از نظر آب مشکل پیدا میشه فعلا اون که دنیا دارد زخائری که الان دارد این نفت این گاز جوابگوی همه نمیشه خدا میدونه که خدای تعالی در آینده چه مادن دیگری چه چیزهای دیگری که در زمین برای ما زخیره کرده اونها را پیدا بکند همیشه بنده ارز می کنم ما اگر چند صد سال پیش پونسد سال پیش این جمعیت نبوده، نصف این جمعیت هم نبوده، یک دهم این جمعیت هم شاید نبوده. اون زمان مردم چی میخوردند؟ الان که صد برابر اون جمعیت ما شدیم، آیا الان همون خوراک را میخوریم یا بهتر از اون میخوریم؟ هر چی که خدا جمعیت ما رو بیشتر میکنه خوراک ما بهتر میشه لباس ما بهتر میشه مرکب و سواری ما پیشرفت تر میشه مسکن ما بیتر زیباتر میشه پس انسان نباید خوف داشته باشه و فی سماعی رزق رزق شما در آسمان است از اونجا خدا بر اساس شرایط شما، جمعیت شما، نیاز شما، ضرورت شما حواله می کند وما توعدون وانچه که شما وعده دادیم می شوید لذا الله می فرماید فورب السماء والارد بعد از این همه دلایل الله سوگن می خورد سوگن می خورد ولی انسان ناسپاس باور نمی کند هنوز هم غفلت می کند هنوز هم خدا فراموشی دارد الله می فو رب السما و الارض قسم بر رب اسمانها و زمین انه لحق همانا این حشر نشر حق است این واقع میشه شه این شکیتوش نیست مثل ما انکم تنطقون مثل ان چکی شما سخن میگوید مثل سخن گفتن شما ببینید خداوند از و به ما حواس زیادی داده چشم داده گوش داده زبان داده ولی چشم امکان در اشتباه بکنه یک کسی را می بینیم غیر او را تصور میکنیم. کسی فکر می که مرد در واقع زنه یه صدای مش فکر میکنیم کنیم فلان است در حالی که فلان صدا همیشه اشتباه اما وقتی سخن می گوید در سخن گفتن میدونی که شما این سخن میگه کسی دیگه سخن اگر کسی دیگه صحبت میکنه شاید شک داشتی باشید که اوف اون فرد اول یا دوم است اما وقتی خود صحبت میکنی شک نداری همونطوری که در گفتن خودت شک نداری در وقوع قیامت شک نکن الله میفرماید فَوَرَبِّ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ إِنْ حَشْرٌ نَشْتٌ حَقَّستْ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ مثل انك شما نطق میکنید سخن میکوئید هل اتاك حديث و ضيف ابراهیم المكرمين خدمت شما در اول سورة ارز کردم در این سورة مباركة پانج نمونة هستند پانج نمونة از تخویف في الدنياوی نمونه عذاب در دنیا اولین را خدا عزوجل زکمی فرماید هل اتاک حدیث الضيف ابراهیم المكرمين آیا پیش شما آمد سخن مهمانان ابراهیم سخن یعنی داستان واقعه جریان جریان مهمانان ابراهیم او مهمانان مکرمین معزز مهمانان خوب ارزشمند این مهمانان کی بودند فرشتگان بودند اینها را خداوند عز فرستاده بود که قوم لوط را حلاک بکنند اما قبل از این چون ابراهیم و السلام چندین بار دعا کرده بود که خدایا به من فرزندی بده لذا اینها را خداوند فرستاد اول بریم پیش ابراهیم به او خوشخبری بدید که خدا بهت فرزند میده همین روزها و همین زودی ها بهت فرزند میده لذا اینها مهمانان معززی بودن پیش ابراهیم آمدند اما پیش ابراهیم آمدند به شکل انسان و بشر آمدند انبیا فرشتگان را می شناختند اگر به شکل بشر می آمدند هم به شکل یک شخص خاصی می آمدند رسول الله صلی الله علیه و می فرماید جبرائیل امین همیشه که پیش ما میاد به شکل دحیه‌ای قلبی میاد اسم یک صحابی هست لذا اما اینها چند نفر فرشته بودند در میان نهاد جبرائیل هم بود ناشناخته بودند نبی پیشناختند ابراهیم ناشناخت همیشه بنده ارز عرض می کنم استاد رحمه الله بیان می فرمود که داستان که قرآن بیان میکرماید این داستان ها داستان نیستند اینها موعظه هستند از سید نظر موعظه هستند که انسان از این داستان ها بهترین موعظ و بهترین برداشتها میتونه داشته باشه الان چند تا برداشت ایمانی و اعتقادی که استاد رحمه الله این برداشت ها رحمی شد بیان می‌فرمود بنده خدمت شما عرض می‌کنم هم چنین داستان‌های دیگر را همین برداشت ها را شما خواهید داشت اولین برداشت خیلی از مردم البته این‌هایی که نمیدانند، معتقدند که انبیا غیب می‌دانند ببینید اینها فرشته هستند ابراهیم خلیل الله غیب نمی‌داند اگر غیب میدونیس اینا رو میشناخت. پس پیغمبران غیب نمیدانند. دوم ابراهیم بعد از اینکه این فرشته ها میایند فورا بلند میشه می مهمان آمد. غیب ندارد که بفهمیم فرشته نمیخورن چیزه. رفت تنها گوساله‌ای که داشت تنها مالی که داشت اون را زبح کرد برای مهمانان و فورا کباب درست کرد، انبیاء سخاوت دارند، فورا برایشون درست کرد در ظرف علا فرشتهها، از طرف خدای از جل آمدند این فرشتهها هم غیب نمی دانند، اگر غیب می دانستند جلو ابراهیم را می گرفتند، می میگفتن که ما فرشته ایم ما نمیخوریم اونا نمیدونن پشت این دیوار پشت این چادر و این خیمه ابراهیم داره چیکار میکنه ابراهیم رفتی نم نشستن متوجه نیستن ابراهیم داره زحمتی خودش، به خودش زحمت میده برای ما غذا درست میکنه وقتی آورد اینا تعجب کرده اینا رو چیکار کنیم اینا که خوردن بلد نبودند از خوردن پاک بودند لذا وقتی که انبیا غیب نم و فرشتگان خدا غیب نمیدانند از این مخلوقات بالاتر داریم پس کی غیب میداند معلوم میشه که لا یعلم من في السماوات والارض الغيبه إلا الله لذا الله می اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما زمانی که داخل شدن بر ابراهیم فرشتگان گفتن سلامن ای سلمنا سلامن ما سلام میگیم به تو سلامی قال سلامون ای سلامون علیکم ابراهیم گفت بر شما هم سلام اما گفت قوم منکرون این قوم ناشنا قوم ناشنا اینا نمیشناسم کی هستن؟ از کجا آمدن؟ مردمی که در این دیار من دیدم تالا اینها را ندیدم فراغه الی احلیه فراغه ای زهبه اما فراغه رفتن با سرعت را میگویند پس با سرعت رفت بسوی اهلش بسوی اهل و عیالش فجاء بعجل سمین آورد گو ساله سمین فربه چاغ این هم هست از آداب مهمان نوازی شیخ رحمه اللہ میشه این موارد را یاد, داشت یاد آوری میفرمود که شما مهمان نوازی را جود را سخاوت را از انبیا یاد بگیرید مهمان که میاد تعارف تو خالی نکنید چیزی میل دارید چای بیارم قضا بیارم او سد میگه نه نه یار لذا اگر چیزی تو خونه هست بیار نپرس او بخورد میخورد نخورد بر میگرده لذا مثل تعارفای ما ایرانی ها که همه تعارفات تو خالی هستند تعارف میکنه بفرمایید یک وقت تو دل میگه باور نکنه بیاد اینو تعارف نباشه مثل انبیا علیهم السلام بدون درنگ انسان هر چی داره بیاره لذا ابراهیم رفت فوراً فجاء بعجل سمین گوساله فربی که مشوی بود کباب شده بود آورد فقر به اليهم نزدیک به به اونا, اونا که نمیدونست یعنی چه اینه برای چی آورد آخر دید که اینا نگاه میکنه اینا نمیخورند شما نمیخورید چرا نمیخورید بخورید خب غذا هست برای شما آماده کردم زحمت کشیدم وقتی دید اونها نمیخورند هم احساس خطر کرد چون از قدیم رسم همین بوده که انسان وقتی که جایی نمک کسی را بخورد به او خیانت نمیکند الان کار نداریم مردم این زمان میخورند و میشکنند اما در اون زمان این طور بود که وقتی که کسی میخواست به کسی تعرض بکند از خونه او لیوان آب هم نمیخورد لذا ابراهیم احساس کرد که شاید این میخان نق... به من تعرض بکنم به من zarar برسانند آمدند ترورم بکنند اینا چیزی از خونم نمیخورند لذا ابراهیم فا منهم هم خیفه در دلش احساس کرد از آنان خوف را. خوف احساس کرد ترسید. اونا متوجه شده ایبراهیم ترسیده قالو لا تخف نترس و بشروه بغلام علیم اینجا دیگه حکایت را گفتن که ما فرشته ما را خدا ما فرستاده جایی دیگه میریم آمدیم پیش شما سری راهی بشارت بیدیم شما را که خداون به شما پسرکی میده علیم دانا بعضی میگه علیم تفسیر سر نبی یعنی خدا بهش علم میده علم نبوت میده لذا نه ترس قطعا همسر ابراهیم علیه صلی اللہ السلام ساره رضی الله عنها و عليه السلام او هم پریشان بود که نا کی هستند که آمدند؟ و او هم گوش میکرد وقتی که متوجه شد که اینها فرشته هستند و اینها آمدن تا به ما خوش خبری بدم ساره هم وارد شد چون که حجاب از فرشتگان دیگه نیست فاقبلت امرأته فی سرت اما با صدای آمد سرر بعضی میگن جیخ کشیدن اما این صدا و فریاد فریاد شادمانی بود خوشحالی بود از یک طرف شاد و خوشحال از یک طرف تعجب فَسَكَّتْ وَجْهَهَا یعنی با دست زد به چهره اش از فرت تعجب از بس که برایش عجیب و چطور بچه به ما میده ما که پیر شدی، ما که سن ما گذشته از اون زمانی که باید بچه بیاد میگویند حضرت ابراهیم 120 سال بود ساره 90 سال بود. الان سادو 20 نواد بود. یا یعنی اینکه سن نبالایی بود که وقت بچه آمدنشون نبود لذا فاقبلت امروز و امروزش همسرش آمد. فی صارت با بازیک کشیدن. فسکت وجهها، چهرهش رزد و گالت عجوز عقیم. آیا بچه از یک پیرزن نازا دو ایدارم. یکی پیر هستم، یکی دیگر نازا هستم. این همه سال بچه خدا بهم نداد. قالو که ذلك فرشتگان میگوشتند این چنین بله از یک پیرزن نازا خدا قدرت دار میده. قال رب که انه هو الحکیم العلیم قال كذلك ذلك قال ربك رب که این چنین رب فرموده حمد السر داده انه هو الحکیم العلیم حمایت اون کارهاش با حکمت هست و خودش علیم هست داناست میداند لذا بعد از که این خوشخبری رسید و ابراهیم الحسّاللّه و السلام خیالش راحت شد الان گزارش کار ماموریت دیگری شما چیه کجا میرید؟ قال فما خطبكم أيّها المرسلون ما خطبكم یعنی ما شنوندیم فرستاده شده خدا شما کار دیگری تون چیه؟ مسئولیت و معمولیت دیگری تون چیه؟ اونها جواب دادن قالو انا ارسلنا الى قوم مجرمین همانا ما فرستاد شدیم بسوی قوم, قوم مجرم هست یعنی جرائم پیشه جنایت پیشه کارشون جرم هست ببینید گاهی انسان یک گناهی میکنه جرمی می میکنه بعد یک بار انجام میده خطایی میکنه دست میکشه. این سبکتر است از اینکه کسی شغلش جرم هست، کارش جرم هست، عادتش گناه و معصیت است. اینها عادتشون شده بود. که جنایت می کردند. لذا ما به سوی اونها فرستاده شدیم. ارز اذکردم اینها انسان های بودند که از فطرت انسانی خارج شده بودند هم جنس باز بودند و تمایلشون به سوی هم جنس بود لذا ما مریم لنرسل عليهم حجاره من طین طب بفرستین بر آنان سنگلاها را حجاره از طین از گل سنگ گِل ها را این سنگ گِل هایی را که خداوند به ظاهر سنگ گل سبوک هست به ظاهر اینا کلوخ بودند سنگ بودند از گل درست شده بودند اما مصومتن عند ربک نشانی شده نزد پروردگارت یعنی در عالم غیب این سنگ ها سنگ های مصوم و نشانی شده یعنی بر روی هر یکی نوشته بود که این سنگ مالکیه معلمتن على كل واحد منها اسم من یوه لکو به روی هر یکی نوشته بود اسم اون کسی که باید حلاک بشه این سنگ را وقتی که می زدن این سنگ نبود بمب اتم بود وقتی که این سنگ می آمد به اون فرد می خورد اصابت می کرد یک انفجاری در درون او پیدا می کرد که بدنش را لح می کرد بغیر از لخت و گوشت و آب چیزی دیگه از باقی نمی ماند لذا اللہ می فرماید سبحان الله مصومتا عند ربک للمصرفین این نشانی شده هست نزد پروردگار للمصرفین برای متجاوزین اون انسان هایی که تجاوز می فاخرجنا من کان من المؤمنین ما بیرون کردیم از اون شهر صدوم بود شهر چی بود؟ سدوم نزدیک اردن ما بیرون کردیم تمام کسانی که در آن شهر بودن از مؤمنین فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین ما نیافتیم در اون شهر غیر از یک خانه اهل یک خانه از مسلمین بیت لوت بودن خانه بود؟ لوت بود لذا الله می فرمه بعد از این که انها را ما حلاک کردیم ترکنا فيها آیت للذین یخافون العذاب العلیم ما در عذاب اونها گذاشتیم پشت سر اونها گذاشتیم نشانه نشانه یعنی درس درس عبرت برای کسانی که بینی ترسند از عذاب دردناک یعنی هر کسی از مؤمنین می ترسد خدای تعالی برای او درس گذاشته می توند از جریان قوم لوت درس بگیرد مراد از نشانات چیه که خدای تعالی گذاشته اونجا نشانات زیادی هستند هنوزم هستند یکی این که همون جایی که لوط زندگی می خدای تعالی اون زمین را, اون زمین را دستور داد جبرائیل امین برداشت و اون زمین را برد به طرف آسمان و از اونجا سرنگونش کرد و چنان محکم کوبید که اون زمین به ته زمین رفت الان همون جا هست مشهور به نام دریای سیاه 400 متر این دریای سیاه امق داره یعنی تا چار متر آب متعفن و سیاه هست لذا یکی از نشانات همین آب هست که آب سیاه هست و آب متعفن هست هنوز هم هست دوم دو همین سنگریزه هایی که قرآن یاد کرده این سنگریزه ها هنوز اونجا افتادند کسانی که رفتند کتابهایشون را شما میخونید اینا نوشتم ما که رفتیم تمام اون منطقه زمین فرق, می دارد, با، فرق دارد با همین زمینی که اینجا هست اینجا های عجیبی هست هایی که اصلا نمونای این های جای دنیا نیست لذا سنگ که انسان از اون سنگ ها خوشش نمیاد انسان میبینه انسان میترسه لذا این سنگ های سیاه و همچنین ببخشی سنگ ریزه هایی که اونجا افتاده و از آب سیاه بدبوی متعفن اینها آیات هستن که هنوز این آیات به جای خود هستن برای کسانی که از عذاب دردناک خدا بترسند رسول الله صلی الله علیہ وسلم وقتی که به غزوه تبوک تشریف بردن در سال نهم هجری و از کنار همون شهر صدوم و روسته های صدوم گذشتند از کنار اینها گذشتند به صحابه دستور دادند از اینجا زود عبور کردن که اینجا محل رحمت نیست محل عذاب اینجا عذاب خدا آمده لذا زود از اونجا عبور کردن الله می فرماید و ترکنا فیها آیه للذین یخافون العذاب الالم گواش در آن آیه و نشانی بر کسانی که می ترسند از عذاب دردناک این نمونه اول تخویف دنیوی ببینید کسانی که منکر شده منکر توحید منکر قیامت این گونه پروردگار با انها رفتار میکند نمونه دوم قوم موسی و فی موسی این بر فيها ترکنا فيها آیتا ترکنا فی موسى آیتا یعنی در قوم موسى هم ما نشانه گذاشتیم رود نيل ارسوان قلزم نشانه هست که غرق فرعونی ها هست و چندین آثار دیگر که از اون زمان باقی مانده وَفِي مُوسَى اِذْ اَرْسَلْنَاهُ وَدَرْ مُوسَى همچنین ما آیه گذاشتیم نشانه گذاشتیم زمانی که ما فرستادیم موسا را الى فرعون بسلطان مبین بسوی فرعون همرا با موجزات آشکار فتولا برکنه اناد فرعون فرعون اعراض کرد پشت داد اما به تنهای برکنه با تمام قدرتش روکن می تمام نیروهای های اداری و انتظامیش. با تمام نیروهای نظامی و انتظامیش. همه غرور و تکبر نشان دادن پشت داد و به موساچ گفتن و قال او مجنون گفتن جادوگر است. یا مجنون آیا جادوگر گفتن یا مجنون گاهی جادوگر می گفتن گاهی مجنون و گاهی باششر گفتن این یا جادوگر یا دیوان است. ببینید صاحر چرا وقتی که موجزات موسا را می دیدند می صاحر است اصار را دیدند ید بیزار را دیدند بقیه علامت را دیدن می گفتند است وقتی که سخنان موسا را می شنیدند بالخصوص در بار توحید و قیامت که ما می دوباره زنده می‌شیم خدا معاخذه می کند می گفتند دیوانه هست پس سخنانش را که میشنیدن میگویتن دیوانه و موجزات را که میدیدن میگویتن ساحر و گالو ساحر مجنون فادخالنا او و جنود ما داخل کردیم اون فرعون را و لشکریانش را لشکریش را فنبذناهم فی الیم انداختیم اونها را در دریا و هو ملیم در حالی که اون سزاوار سرزنش بود سزاوار ملامت بود یعنی ملامت بود سزاوار سرزنش بود چرا کفت کرد اناد کرد پس ببینی این نمونه دوم هر کسی که قیامت را مسخره بکند و پشت بده به قیامت و کسی که قیامت را تبلیغ میکنه او را میگه مجنون و دیوانه این نتیجهش نمونه دوم بود و نمونه سوم، و فی عادن این نمونه سوم هست یعنی ترک نافی عادن همچنین در قوم عاد ما نشانه گذاشتیم آیه گذاشتیم درس عبرت گذاشتیم و فی عاد اذ ارسلنا علیهم الريح العقيم وقتی که ما فرستادیم بر آنها بعد نازا طوفان نازا بعضی بادها هست مفیدند بعد برای ما باران میاره اما بعدی هست که هیچ خیری نداره عذاب از شر است اون نازا هست ماتذر من شیئن اتت علیه این باد نمی گذاشت هیچ چیزی را که بر می آمد الا جعلت ہو رمیم مگر او رمی کرد مثل خاکستر رمیم میگن چیزی که سخت شده باشه تبدیل به خاکستر شده و پوسیده این نمونه چارم بود، ببین این هم منکرین توحید و قیامت بودن، نمونه پنجم، ببین نمونه سوم بود، نمونه چارم را میخوانیم گروهی گروه دیگر که هم منکر توحید و قیامت بودن، وفی ثموده، همچنین نشانه دیگر در قوم سمود هست، اذ قیل لهم تمتعو حتی حین، بیانان گفته شد، شما بهره بگیرید از، دنیا و نعمتهای خدا تا یک مدت اندکی اصلش اینه که بعد از این که را حضرت صالح آشکار کرد شطور را اینا شطور را کشتند شطور را کشتند خدای به حضرت صالح دستور داد به اینها بگو تمتعو فیدارکم سلاست ایام شما سی روز تو خانه تون بمانید ذالک وعدون غیر و مکذوب این وعده وعده دروغی نیست. حق بعد از سی روز میبینید چی میشه با شما. پس این به همون اشاره شده که وقتی که ازام آمد به آنها از طرف ساله گفته شد تمتعو حتی تا, تا یک مدتی تا یک زمان یسیر و اندکی شما بحری بگیرید تو دنیا بگردید کیف کنید عشو نوش کنید فعتو عن امر ربهیم چرا اینها عذاب داده شده؟ اینها سرکشی کردند از امر پروردگار فأخذتهم ساعقت و هم ینظرون از آسمان آمد آمد اینها را گرفت در حالی که او ینظرون نگاه میکردند دیدن چطور عذاب میاد عذاب آمد مستقیم خانه ها اینها همه انها را در دم موت داد از بین برد الله میفرمای مهلتی نیافتند فما استطاعوا من قیام نتوانست تا بیس نفر جيش و ما كانوا انها نبودن انتقام گیرنده نتوانسته انتقام بگیرند خدا از بین برد قوی بودند ولی قوی تری بالای سرشون بود این نمونه چهارم بود منکر توحید و قیامت انجام و نتیجهش این میشه و نمونه پنجم وقوم نوح من قبل اي اهلكنا قوم نوح من قبل قوم نوح قبل زين ما هلاك كرديم قبل از همه اولي قومي كه نابود شد قوم نوح بود چرا هلاكشون كرد انهم كانوا قوما فاسقين اينها بودند قوم فاسق يعني از حد حدود خدا هیچ حد و مرزی را رعایت نکردم بعد از این پنج نمونه خدای از و جل دلیل عقلی دیگری که ساختن آسمان هست و بنای سما هست الله ذکر می فرماید چه رب خیرخواه مهربان که دلائل مختلف زک می کند نمونه های عبرت زک می کند درس های تخویف زک می دلایل دلائل عقلی زک می کند همه و همه برای چیه تا اینکه این انسان به عقل بیاد به هوش بیاد انسان متوجه بشه ولی چقدر انسان بعض انسان ها ناشاکرن بعد از این همه دلائل بعض هم کفر میکنن مسخره میکنن کنن, می کنن. الله میفرماید می فرماید و سما بنینا ها به عیدین ما آسمان را بنا کردیم با قوت با قدرت خودمون و انا لموسعون همانا قدرت ما وسیع است لموسعون یعنی قدرت ما وسی نه تنها به اندازه ساختن مثل این آسمان خیلی وسیع‌تر خیلی بیشتر تفسیر مدارک انا لموسعون ای انا لقادرون قادر یعنی قدرت ما بسیار وسیح است و ارض فرشناها زمین را ما فرش کردیم فنعمل ماهدون بهترین جای راحت برای انسان ها درست کردیم بهترین مهد است مهد چی را میگند استراحتگاه مهد میگویند کنم اون جایی که بچه میخوابد اون محلی که محل سر... اون سرسوری که بچه اونجا استراحت میکنه چطور راحت از آرام از می میگره بهترین جاش بر از است وقتی که روی زمین گریه میکنه شما تو این میذارید اونجا گریش قط میشه پس جای راحتی هست زمین هم چنین برای همه ما اینطور جای راحتی هر نوع استفاده از زمین میکنیم و من کل شیئن خلقنا زوجین از هر چیز ما آفریدیم جفت آفریدیم متنوع آفریدیم انوا آفریدیم لعلكم تذكرون شاید شما پند بگیرید از هر چیزی که الله می فرماید انوا آفریدیم تنها دو چیز نیست زوجین نر و ماده نیست تنها بلکه مراد تنوع هست ليس المراد التعين تعدد التثنيه مراد فقط دو چیز نیست بل المراد و اصناف المخلوقات انواع مخلوقات ما آفریدیم یعنی خلقنا كل شيء من كل شيء اصناف از هر چیزی ما انواع مختلفی آفریدیم مثلا جفت هم غیر جفت همست. مثلا انسان مرد و زن اما بقیه چیزها اوقات نگاه کن فقط صبح و شام نیست اوقات زیادی هست هوا تنها سرد و گرم نیست هواهای دیگری هم هست رنگ فقط سیاه و سفید نیست انواعش هست میوه فقط دوتا نیست حیوان فقط دو تانیست خوردنی دو تانیست نوشیدنی دو تانیست از هر چیزی ما انواع آفریدیم و من کلی شن خلق نزوجین یعنی انواع لعلكم تذکرون ففررو الى الله ببین وقتی که این همه آثار قدرت خدا رو میبینی ای بنده مؤمن بگریز فرار کن بسوی خدا برو طرف خدا برو ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين همانا من محمد هستم برای شما از جانب همون خدا ترساننده آشکار من شمار می ترسانم شما به خدا برگردید به خدا رجوع کنید و با خدا شریک نگیرید ولا تجعلوا مع الله إله آخر شما قرار ندهید هم رب الله مابود دیگر مابود دیگر را و خدا شریک نسازید اینی لکم منه نذیر مبین همانا من برای شما هستم از جانب پروردگار نذیر آشکار ترسانند آشکار اما خدا تعالی اینجا توبیخ می فرماید عطاب می فرماید مشرکان را که مشرکان هر وقتی که هر پیامبری می آمد نه تنها شما ای رسول من هر پیامبری می آمد همین دو چیزی که به شما میگویند به اون پیامبر هم میگفتند همین دو چیزی که به موسی گفتند به اون پیامبران هم میگفتند یک ساحر دو مجنون حرفای پیامبران را گوش می‌کردند میگفتند که دیوانه هست و تأثیر کلام پیامبران را یا موجزات پیامبران را وقتی می دیدن می گفتن که جادوگر هست رضا الله می فرماید کَذَلِكَ مَا أَتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ همچنین نیامد پیش کسانی که قبل زینہ بودن مِن رسولٍ هیچ پیامبری پیششان نیامد الا قالو صاحرٌ او مجنون مگر گفتن صاحر هست یا مجنون هست جادوگر هست یا دیوانه هست اتواسو به خداوند عز و جل آیا گویی که اینها هم دیگر رو کردند چونکه همه مشرکان مثل هم بودند مشرکی که الان مثلا هست با 100 سال پیش با 500 سال پیش حرفیشون مثل هم هست این اتواسو به نظیر اون آیه دیگر هست که تشابهت قلوبهم دلهای مشرکان چیه مثل همه زبانشون هم مثل همه همه به پیامبران ما گفتن صاحر یا مجنون اتواصو به آیا هم دیگر را کردند آیا پیشینیان گفتن به بعدیا که هر وقتی پیش شما هم پیامبری آمد شما هم بگید ساحر و مجنون نه خیر هم دیگر را نکردند بس علت چیه که اینها مثل هم گفتند الله می فرما اینها یک وجه اشتراک دارند، وجه مشترک دارند. وجه مشترکیشون چیه تخیان گری و سرکشی. اینا همه مثل هم چیان سرکشن بلهم قومونطغون بلک اینها قومی هستن سرکش اینها سرکشی کردند اینها تمرد کردند با انبیاء مبارزه کردند. لذا اکنون خدای از زوجه تسللی میده پیام را. تو نگران نباش فتول عنهم فما انت بملوم تو اعراس کن از تو ملامت نیستی چون تو پیام خدا را رسان حق مطلب را ادا کردی فقط و فقط از ان بباد مؤذب بکن نصیحت بکن ادامه بده و ذکر فإن الذكرات تنفع المؤمنین پند بده نصیحت کن همانا پند و نصیحت و اندرز نف میرساند به مؤمنان اگر کفار و مشرکین از پند شما متاثر نشوند مؤمنین که میشوند پس شما پندت را ادامه بده این میتونه جواب سوال میشه که وقتی که اونها نمیپذیرن تبلیغ فایده چیه؟ خب فایده تبلیغ اینه که خودی از تبلیغ استفاده میکنم پند میگیرم وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون من خلق نکردم نه آفریدم جن را و انسان ها را مگر برای اینکه فقط مرا عبادت کنند الله می فرماید هدف آفرینیش این بود که فقط وفقط مرا عبادت کنند ابن عباس نمست الا لي وحدوني در عبادت مرا واحد ومنفرد منفرد بدانند و خدا می فرماید که من فرما هیچ نفعی از اونها انتظار ندارم هیچ رزقی هم انتظار ندارم که بندگان من را رزق بدهند ما منهم من رزقن. من اراده ندارم از اونها هیچ نوع رزقی و ما اريد ان يطعمون و نمیخوام که اونها خوراک بدن بندگان من را بعضی گفتن یطعمون ای یطعمو عبیدی بندگان من را خوراک بدن نه ان الله هو الرزاق همنا الله خودش او هست رزاق رزق دهنده قوت المتین دارای قوت مستحکم هست لذا من برای عبادت خلق کردم و من برای اینکه فقط مرا عبادت کنند در عبادت من دیگران را شریک نسازن پیدا کردم اما کسانی که مثل اقوام گذشته مثل قوم نوح قوم عاد سامود فرعون لوط که پنج نمونه گذاشتند مثل اونها اگر اینها هم بخواهند همون مسخره ها را بکنند ساهر و مجنون بگند سرکشی و تمرد بکنند نوبت اینها هم خواهد آمد فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبَ مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ همانا برای کسانی که ظلم کردند ظلمو یعنی اشرک و شرک کردند با شرک و کفر بر خود ظلم کردن زنوبن سهمی از عذاب است ببینید زنوب در واقع دلو بزرگ را میگویند که از چاه آب میکشید، یکی از دلو در عربی یکی زنوب دلو همون کوچیک هست که یک نفر شما به تنهایی میتونید که چرخ را بچرخونید و آب بکشید اما زنوب اون دلو بزرگی هست که یک جماعتی اون را چکار میکردند؟ می مثلا یک روستایی یک دلو بزرگ داشت این نوبتی بود چون مردم به وسیله دلوهای بزرگ گسفندان خودشون را آب می دادن را آب می دادن لذا امروز نوبتی اینها، اینها آب میکشیدن. شب نوبتی اون هاست اون ها. پس دلو بزرگ را زنوب میگویند. اینجا کنایه از خود همون نوبت است یعنی اون کاری که این زنوب را این زنوب انجام میده. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُونَ ذَنُوبًا برای کسانی که ظلم کردند نوبت هست یعنی سهمی از عذاب مثل ذنوب اصحابهم مثل سهم هم مشربهایشون اصحاب چیه؟ همی هم کیشانیشون این مشرکان و کفاری که در آیات گذشته خاندیم اون حالت برای اینها هم هست فلا يَسْتَعْجِلُونِ نَاجَلِ نَكُنَنْ چون مشرکین مکه مسخره می کرد می گفتند کهی هست زودتر باشه اون یکی می که اگر خدای این حق است فامتر علینا حجارت من السما بر ما سنگ ببارن خیلی عجله داشتند الله می فرماید فویل این سوره مکی هستم می هنوز حجرت نشده هنوز جهاد مشروع نشده هنوز بدر نیامده لذا این آیه بعدی اشاره به بدر هست بعضی میگن اشاره به قیامت است ولی نه اینجا بحث بحث عذاب دنیا بود یا عذاب آخرت عذاب دنیا بود عذاب دنیا چون که نمونه های قوم عاد و ثمود بیان شدند اینا در دنیا عذاب شدند لذا الله میفرماید یک میعادی هست روز وعده‌ای هست اون روز وعده مفسرین میفرمان روز بدر است چون که روز بدر واقعا یک روز تکان تکاندهندهی برای مشرکان بود شما اینطور معمولی نپنداری که هفتاد نفر کشته نه هفتاد نفر در این زمان نبود در همین زمان اگر هفتاد نفر کشته میشه تمام دنیا حرکت میکنه چه خبره هفتاد نفر کشته شده در اون زمان که جمعیتی دنیا نداشت در اون زمان که جنگ به وسیله شمشیر بود کمال میکرد یک نفر را میکشت هفتاد نفر اونم هفتاد نفر از سرداران و سران کفر و شرک هفتاد نفر از سنادید از گنده ها همین هایی که ادعا می کردند. هفتاد نفرشون کشته شدن ابو جهل بود امیه بود عتبه بود شیبه بود تمام بزرگان بودند، تمام اشراف قریش بود و بعد هفتاد نفر دیگه اسیر شد باقیه مثل موش فرار کردند. هیچ کس تو بیدان نماند. از دست چی کسانی؟ اونا جمعیتشون هزار نفر، این طرف جمعیتشون سی و سیزده نفر. سی و سیزده نفر که نه شمشیر درست حسابی داره، نه اسبی داره، نه نیزهی داره. افرادی که تادیروز زیر دست هم اونها بودند. امروز به مدینه پناه آوردند، پناگایی نداشتند، لذا کمر کفر شکست بعد از اون این روز روز فرقان نامیده شده به همین خاطر شما تمام جوانب را در نظر بگیرید میدونید که این روز عذاب بود برای قریش لذا الله میفرماید فویل للذین کفروا ویل و هلاکت برای کسانی که کفر کردند یعنی تباهی بربادی و ویلا من من بیانیه هست؟ مین یومہم الذی یعدون یعنی اون روزی که اونها وعده داده می شوند یعنی اون روزی که اونها وعده داده می شوند خدا اون روز را به عنوان میعاد تعین میکند و تعین فرموده اون روز برای اینها واویلا هست بدبختی است لذا خداوند میفرماید ای اهل مکه شما که مسخره می کنید و شما که به کفرتان ادامه می دهید مثل اقوام گذشته یک روزی انتظار در انتظار شما هم هست که بالاخره اون روز فرار رسید و وعده خدا محقق شد صدق الله مولانا العظیم اللهم صلی على سیدنا و شفینا و حبیبنا مولانا و حمد و